انسان اینقدر خشن اینقدر لطیف اینقدر رحیم اینقدر بی‌تراحم این, بی این چیست که ساخته‌ای و پرداخته‌ای خدای من آیا آن پیر قبادیان راست نگفت که همه فتنه‌ها از توست اما جرأت سرزنش کردنت در من نیست و شب گردا گرد آتش را مملو از خاطره می کنیم و همیشه خاطرات عاشقانه از نخستین روز نخستین ساعت، نخستین لحظه، نخستین نگاه و نخستین کلمات آغاز می شود همانگونه که سیاست از نخستین زندان، نخستین شلاق و نخستین دشنامهایی یک بازپرس عشق نفس نخستین است و درد، درد جاری نخستین همیشه و به سیب زمینی های پوست سوخته از زیر خاکستر درآمده داغ داغ که از این دست به آن دست میاندازیمشان گلپر اصل میزنیم و نمک نر. خداوند خدا پیش از آن که انسان را بیافریند عشق را آفرید چرا که میدانست انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خیشتن خیش نخواهد داشت و شب سیبزمینی داغ را با گلپر و نمک داغ داغ در دهان می‌گذاریم. و شب گروه بزرگ نوازندگان اطرگل ها را وادار می که آهنگی تازه برای من بنوازند و شب جاده های خلوت بیابانی را پر از آواز می کنیم. و شب جنگل عباس آباد را پر از زمزمه می کنیم. و شب سراسر آسمان را پر از نگاه می کنیم و شب بلند حراس را ناگهان پر از فریاد می کنیم مغلها مغلها های گیل مرد کوچک اندام چک پذیر ناشکستنی باز مدت هاست که از آن ترانه های گیلکی که بوی ماهی و دریاف و نیلوفر آبی و خسب و کلبه و برنج و چای و بوی جمیع سبز های عالم را دارد برایم نمیخانی تمام شد آن حکایت عاشق آرام و به زمزمه میخواند تمام نشد بانوی خوب آذری من کمی امان بده تا برای تمام روزها، هفته ها، ماه سال ها و قرنی که ناگزیر در آن زندگی می کنیم و برای تمام عاشقان صادق، حتی اگر هیچ معشوقی در کار نباشد، یک عاشقانه آرام بسازم، یک عاشقانه کاملا آرام من به پدرت که به آن دست گل کوتاه من می خندید گفتم این قطره پر از ارادت است آقا اما آن دریای شما به جز گل هیچ چیز نیست آن وقت تو از دور پیدا شدی که شتابان به سوی من میآمدی و پدرت که عشق را میدانست در آنی ناپدید شد و این سومین و روز زمینگیر شدن من پای سوالان تو بود وامین روز سومین سو روز دیگر چیزی از تو باقی نمانده بود گیل مرد چه اطری خدای من صدای زنبور می و تو را دیدم که از دور می آمدی. گیل مرد کوچک اندام دید که دخترک از دور میآید. آن روز دیده بود گیل مرد از انتهای یک روستای کهنه مانده از اعصار بر باد رفته که عاشقان خالصانه در راه عشقش جان باخته بودند گذشته بود. از آن روستا که زمانی صوفیان بزرگ صوفیانه بر دریاهای عشقش قدم زده بودند و از کنار ای که زرتشت پیامبر خسته به دیوارش تکیه داده بود و گریسته بود و از کنار مخروبه قصر حسن لو و دیواری که جام زرین حسنلو همچون رؤیای یخ در کویر مرگ جای خالی را بر دیوار نهاده بود گذشته بود تا به دریای از گل برسد که در آن هیچ قایقی تاب نیاورد دخترک نزدیک می شود و من او را دیگر دخترک نمی بینم دخترک چندان روستایی هم نمی آید که من بتوانم چتر رؤیاهایم را ببندم دخترک میدود به سوی من انگار که به جانب آشنای قدیمی دخترک انگار خواب دیده است که من عاشقش خواهم شد دخترک میدود و ابر عتر از او نمی ترسد. فقط خیشتن را کنار میکشد و دالان میگشاید دخترک که دیگر دخترک هم نبود آمد بیپروا تا بالای سر من دیدم که دختر بالا بلندی است سرو شاعران قدیم را شرم ساری و با چشمان سیاه سیاه مخمل سیاه من با لحجه گیلکی هم گفتم سلام دختر با لهجهی شیرین آذریش جواب داد. سلام و بر جا ماند. دیگر نمیدانستم چه بگویم و باز دیدم که دختر آنقدر بالا بلند است که میتواند چهره به جای خورشید صلات ظهر بنشاند. دختر زیر نگاه پرشرم شمالیم لبخند زد و به نرمی واقعی پرسید: جا چه میخواهید؟ برای اصل آمدم اصل اصل منم منم اصل اصل اصل میخوام خواهم نکندوی اصل با صد هزار زنبور گزنده بی پروا اصل خندید منم اسمم اصل است و اصل اصلم اسم و رسمت می میبینم اینجا بمان و چند روزی مهمان پدرم باش و با من حرف بزن یازده ماه است با هیچ کس به جز پدرم سخن نگفتم و من و پدرم فقط آزری حرف میزنیم آهسته و خجل میگویم اگر نهار نخوردهی بنشین برای شما هم لغمه هست. تخم مرگ پخته و ماهی تون هم دارم. نان به قدر کافی. دختر نشست. کندوی اصل از دیواره خورشید جدا شد. اما آن آفتاب که آمد رونقی نداشت. اصل بی ادا سر سفرهام نشست و من بی هوا دلبسته بسته شدم آشق بهانه نمیگیرد آشق نق نمیزند آشق در باب زندگی سخت نمیگیرد. تخم مرغ تازه پخته اتره ماندگاری دارد. عاشق به نان خالی و ظرف پر از محبت رازی است. گیل مرد کوچک‌اندام میگوید ما بارها به همان آسودگی و شیرینی در ها دشت ها و در اتاق که ما نهار خوردیم اما نه به آن حال که آن روز زیر زمزمه دائم زنبورهای اصل و چتر اتر پونه های کنار جوی را همسایه پنیر تبریز کردیم با نان تازه دهی